هر که جز ماهیز آوش سیر شد هر که بیروزیست روزش دیر شد در بریزی را در کوزهی چند گنجت قسمت یک روزهی کوزهی چشم حریسان پر نشد تا صدف قانع نشد پردر نشد هر که را جامز عشقی چاک شد او زهرس او زهرس و جمله ای بی پاک شد در ادامه اشعاری که در دیواچه و مقدمه مصنوی آمده و مشهور به نینامه هست در جلسه گذشته خدمت سروران عبیاتی را از کلید مصنوی حکیم الامم شفری تحانوی مباحثی خدمت دوستان گفتیم در این بیت هم مولانا میخواد یک دسته بندی از افراد مختلف جامعه بکنه. و این دسته بندی که مولانا میخواد بکنه بر اساس ملیت‌ها ها و قومیت ها نسل ها و نژاد ها زبان ها نیست. تقسیم بندی هایی که امروز تو ملت ها و قوم ها شده بر اساس تقسیمات جغرافیایی یا رنگ های ظاهری یا زبان ها این با مفاهیم عرفانی و دینی ما هیچ جایگاهی نداره چیزی که ما رو یک قوم واحد کرده در هر عصری اون محبته ما یرتد منکم عن فصوفا یات الله بقومن. در مقابل مرتدین الله سبحانه و تعالی یک قوم رو بیان میکنه که شعار این قوم یحبهم و یحبونه است شعر این قوم اینه که اینا با خدا محبت میکنن و خدا هم با اینها محبت کنند اینا یک قوما اینا زیر یک لوا و زیر یک پرچم جمع شده اگر چه تو اینا بلال حبشی هست تو اینا صہیب رومی هست تو اینها سلمان فارسی هست تو اینا عمر عرب هست اما اینا ملیت ها و قومیت های اینا نیست و وقتی کسی از اینها سوال میکنه من القوم شما چه قومی هستید فریاد اینها اینه که نحن المسلمون پوزیشنه با شهرشون با زبانشون با نسلشون با نژادشون با این تقسیمهای سست و بی‌بنیاد دنیوی خودشون رو معرفی نمی‌کنن. از روزی که ما مسلمانها خودمون رو با این تقسیمات جغرافیایی و سیاسی و قومی و قبیله‌ای معرفی کردیم از اون روز این قربت الوثقا و این حبل المتین رشت رشته شد. دیگه تنا باقی نمون. و های مختلف تونستن ما رو تکه تکه بکنه حالا مولانا تو این ابیات میخواد یک دسته بندی دیگه از انسان ها معرفی بکنه بر اساس محبت هر که جز ماهی زعابش سیر شد هر که بیروزیست روزش دیر شد تو این بهت مولانا سه دسته انسان ها رو معرفی میکنه یک ماهی ماهیان دریای محبت خدا که همیشه با یک بشاشتی و یک انشراحی آماده هستن که چیزهای جدید و جدیدتری رو از قرب خدا به دست بیارن سیر نمیشن اینها اینا همیشه منتظرن در عین این که در آب دریای محبت بیکران خدا دارن حرکت میکنن با همین وجود اینا هی منتظره چیزهای جدید و جدیدتری هستن از هر موج این دریا یک عشق تازهی و یک نوعی و تازگی جدیدی رو برای خودشون می‌بینن و در اوج مجاهدت ها چیزهایی رو مشاهده میکنن این گروه رو مولانا میگه ماهی اینا که وقت سیر نمیشه دسته دوم افراد رو مولانا محرفی میکنه به عنوان غیر ماهی هر که جز ماهی زعابش سیر شد این دسته دوم اینا غیر ماهی هستن یعنی افرادی که به یک حدی از محبت و معرفت خدا به یک سری مواجید به یک سری ذوق ها به یک سری کیف ها به یک سری لطف ها به یک سری خوشی ها تو مسیر و محبت خدا میرسن بعد استوب میزنن سر جاش به حد به همین حد قانع میشن می و دیگه اون تشنه کامی که در کنار این دریا داشتن دیگه از دست میدن کم کم رو به قنودگی و فرسودگی میره و حس میکنن رسیدن و دیگه بیشتر لازمی نیست جلو برن این دسته دوم رو مولانا به عنوان غیر ماهی معرفی میکنه عامه مسلمان ها رو و دسته سوم بیروزی هستن افرادی که هیچ حظ و بهره ای از عشق و محبت و معرفت خدا نداره و اینها تنها چیزی که آیدشون از دنیا شده اون چیزی که آید قارون شده خودشونو به یک بهای اندک دنیا فروختن رو خودشون قیمت گذاشتن اما کسی که تو بحر محبت خداس نفس مطمئنه رو قاضی سنا الله در تفسیر مظهری میگه نفس مطمئنه مثل ماهیه که با آب فقط زنده است و زندگی رو بدون آب نمیخواد زندگی بدون بدون آب برای او بدون این دریا برای او مرگ اصلا اسم دیگه نمیتونه براش بذاره و تصور زندگی خارج از این دریا اصلاً براش زجر دهنده است. طاقت فرسا است. فکر اینو بکنه که من از این دریا یک روز جدا بشم، و بیرون این دریا به چیزی برسم. او همه چیز رو تو دریا جستجو می‌کنه. هم خدمت دوستان شاید گفته بودیم، گفته باشیم تکرار می‌کنیم قضای روح به هر که قضای جسم اگر تکرار توش باشه خسته کننده نیست. سر هر سفره نان بود باشه سر هر سفره باد آب باشه اینو تکراریه نمک بود باشه اما با همون تکرارش لذیذه و تکرارش هم لذت بخش ماهی تو آب زنده است میتونه با آب زنده باشه یعنی سرش تو آب باشه و بقیش بیرون آب باشه این زندگی داره اما زندگی نیست با لطف زندگی با لذت نیست زندگی با حریت نیست زندگی با لذت و لطف نیست نمیشه اسم این زندگی ماهی رو موت گذاشت نمیشه حیات کذاشت چون اصلا با آب با آب داخل آب زندگی نمیکنه. یک بخشش تو آبه و فقط آبشوشش داخل آبه بقیش دست کس دیگه است این از آب فقط به همین قد قانع شده که سرم تو آب باشه نفس بکشم فقط و اسمم جز ماهی های زنده باشه اما یک زمان، با یک در دوستان ما رفته بودیم چابهار کنار ساحل یک آقای قلاب انداخته بود ماهی میگرفت بعد ما از دور اول صبح بود داشتیم نگاه میکردیم یک ماهی رو گرفت تو دلم پیدا شد گفتم ببین ماهی که تو دریا باشه و این دریا سیرش نکنه و قلاب بیرون دریا رو بگیره و به یک تعمه کوچیک راضی بشه سازاش همینه که قلاب کامش رو میگیره و او رو به ناکامی میرسه توی که تو دریا هستی تو دریا به مرادت نرسیدی از اونی که تو خشکی هست و چنگالی انداخته و تمعی برات درست کرده به این راضی شدی سازش همینه پرتش کرد اینو بیرون از دریا بیرون از دریا میگه حالتی دیدم این ماهی یک یک لرزشی داره مثل نفس لوامه نفس مطمئنه ای که از دریا کشیده میشه میاد بیرون لوامه میشه یک لرزشی داره یک تپشی داره چرا از این دریا فاصله گرفتم چرا اینطوری شدم میاد این نفس ملامتگر شروع به توبیخ میکنه حالا این ماهی یک تپشی پیدا کرده من از دور با خودم نگاه میکردم گفتم نفس مطمئنه رو فروختی به این نفس لوامه بعد خب این بنده خدا کلی زحمت کشید به خدا نمی‌دونه چقدر طول کشید تا این ماهی رو بگیره نمی شد که ماهی رو بگیری و بندازی و دیدن این صحنه هم زج دهنده بود تون تو ساحل صخره‌ای جایی بود یکم آب جمع شده بود من دوم این ماهی رو گرفتم سرشو تو آواا کردم راحت شد اما این راحتی راحتی به تمام معنا نبود چون دومش دست کس دیگه بود اون ماهی که تو دریا بودن عشی داشتن راحتی داشتن با هر موج دریا حرف می و عشق می کردن. اما این از این ترنم عاشقانه محروم بود چرا؟ چون دریا رو با یک طالب عوض کرده به همین طالب راضی شده همین که سرم تو آب باشه و اسمم ماهی باشه و منو تو لیست زنده ها شامل بکنم بس منه برای همین افرادی که به یک درصد از محبت خدا راضی میشن زندگیشون زندگی نیست که اسمش بشه بشی حیات تیبه گذشت اینا زنده هستن مثل زندگی اهل جهنم اهل جهنم تو جهنم زنده اما لا یموت فیها ولا یحیا و یعتیه الموت من كل مکان و ما هو به میت از هر طرف احاطه کرده موت اونها رو اما میتی هم نیست. کسی که از این دریای محبت خدا به یک تعمی راضی شد و نفس مطمئن نشد و به نفس لوام فروخت آقابتش همینه این شاید بشه اسمشو گذاشت مسلمان شاید اسمشو گذاشت زنده اما زنده حقیقی نیست و حیات واقعی نداره انسان ماهی همون کسیه که دریا برش بس، به هر موج دریا زنده به آنیم که آرام نگیریم زندگی رو تو دریا با همین موجش با همین جوش و خروشش با همین جزره با همین مدش دوست داره میپسنده این رو هیجانات دریا نه تنها او رو کنارکش نمی و فراری از دریا نمی بلکه چی؟ همیشه تو دریا سیر و مطمئنه نفس مطمئنه رو علما میگن همینه قادی الله میگه نفس مطمئنه مثل ماهیه که هیچ موقع از آب سیر نمیشه. جایی دیگه مولانا در مسلمی میگه گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست ماهیان را با یه جنگ هاست ماهی هیچ موقع از یک رنگی دریا خسته نمیشه دیگران یک رنگی دنیا یک رنگ میبینند اما ماهی که تو آبه تو این آب خیلی چیزا داره میبینه و اون چیزایی که تو خشکی هست رنگارنگی که تو این خشکی هست تعمها و این امارت ها، عمران ها، آبادی، آبادانی ها ماهی با اینا ناشنا هست ماهی رو نمیخواد که ماهی همون یک رنگی دریا رو به این همه رنگا رنگی خشکی عوض نمیکنه. با اون جنگ داره اصلا فکر اون هم براش زجدهنده است برای همین عرفا و مشایخ مولانا تو مناجات خودش جای دیگه چقدر زیبا میگه مرگی است با درد و نکال خدای برای بوده از تو و دوری از دریای محبت تو من نمیتونم اسم دیگه ای بگذارم اسم این مرگ اصلا نمیسه اشمسو زندگی گذاشت دسته اول انسان‌ها ها ماهی هستن اینا همیشه تشنه گشاد ذهن با یک انشراهی با یک شرح صدری منتظرن هر روز پله های ترقی و قرب لا محدود خدا رو تیب کنن اما یک دسته دیگه هستن به یک سری چیزهایی که تو این مسیر بهشون میرسه به همینا قانع میشن و استوب میزنن همینقدر آب باشه که کلمون توش باشه زنده باشیم نفس بکشیم اسم مسلمان رومان بمون باشه ما بیشتر از این نمیخوایم. و دسته سوم انسانها که مولانا اینجا اونها رو بیان میکنه اونها بیروزی ها هستند کسایی که هیچ حزی و بحری از محبت و عشق الهی ندارن بلهم <تصفيق> جلسات رو جلسات هم خدمت دوستان گفته باشیم هر عضو بدن انسان یک لذت داره چشم برای خودش یک لذت هایی رو می دیدن یک سری مناظر دیدن یک سری چیزهای پر طراوت و زیبا برای این چشم لذته گوش یک سری لذت هایی رو می طلبه شنیدن یک سری نقمه ها و ترنمه ها برای این گوش لذت بخشه شکم ما یک سری ها رو میطلبه از لذت‌ها از یک سری, لذتحار... سری طعم‌ها لذت میبره تو این لذت‌های اعضا حیوانات هم با ما صحیح حیوان حیوانم میفهم لذت چشم یعنی چی لذت گوش یعنی چی لذت شکم یعنی چی لذت خور و خواب و سرور یعنی چی شهوت چشم یعنی چی شهوت شکم یعنی چی شهوت فرج یعنی چی اینا رو حیوان میتونه درک بکنه این لذت هایی که برای اعضای مختلف هست حیوان هم میتونه اینها رو با وجود اینکه که دایره صلاحیتاش خیلی تنگه درک بکنه اما یک چیزی هست مال منه لذت قلب لذت دل این فقط مال منه و همین لذت دل بوده که من از سایر موجودات برتر و بهتر کرده من نار شهوت رو تبدیل به نور خدا میکنم من با عشق زندگی میکنم ملائکه و کروبی های آسمان عبادت میکردن، اما خدا عبادت منو میخواد، منو منو خلیفت اللهی فلعرز کرد چرا؟ در دل, دل که واسطه پیدا کیا هم نه انسان کو ور نطاعت که لیه کچ کم نت من انسان رو برای یک درد دل, دل پیدا کردم و حدینا ها نجدین سر یک دراهیه راه واضح و آشکار. فعل همه ها فجور ها و تقوا ها تو وجودش یک کشمکش درونیه انتخاب میکنه خودش مسیر خودش رو از خیلی از لذت های حرام خودش میگذره تا خدا رو انتخاب کنه ببینید در نیمه های شب یکی بلند میشه تسبیح خدا تقدیس خدا رو بیان میکنه یک جوان از امت نبی شما فکر میکنید عبادت اینو خدا بیشتر دوست داره یا عبادت یک ملائکه رو قطر اش که اینو خدا بیشتر دوست داره یا تسبیح و تقدیس اونارو دل شکسته این و خدا بیشتر دوست داره یا تسبیح و تقدیس اونا رو. اونا اگر عبادت میکنن نحن نسبح و بحمدک و و لک یک چیز فطریه براشم. مثل دم و بازدم من و تو. مثل نفس کشیدن. اصلا سبحان الله الحمدلله تکفیر و تقدیس و تحمید برای اونها یک چیز فطریه. احتیاج به هیچ زحمتی تسنعی تکلحی ندارن. ولی منی که نیمه های شب بلند شدم با خدا دارم راز و نیاز میکنم از خیلی چیزا گذشتم یک درد دل بلند شدم. با یک انتخاب بلند شده، یک عشق منو بلند کرده یک سوز درون باعث شده که من تو این هوای سرد بسترمو ویل بکنم همسرمو ویل بکنم خواب راحت و شیرینمو ویل بکنم دنبال چی میگردی آقا من امن مکن من کسی گم کرده ام در میان خانه صاحب خانه را گم کردم حضرت شیخ ما حضرت مولانا حکیم محمد اختر میفرگوزن ساعت سه نصف شب من همیشه تدارک و آمادگی وضوع شیخ خودم رو میکردم ساعت سه برای تحجید بلند میشدن شیخ ما میگه که وقتی که بلند میشد میامد بیرون از مسجد یک مرتبه یک آه میکشی و میگفت آه ای قرار جان بیقراران این آه در نزد خدا میدونی چقدر عرضش داره این آه رو اگر یک پله بگذارن عبادت تمام ملائک و کرروبیه های آسمان رو یک طرف بگذارن این ارداشش پیش خدا بیشتره چون این با یک انتخاب با یک سوز با یک درد از یک سری چیزا گذشته به خیلی چیزا پشت پا زده تا چه حالا شده بنده خدا و عاشق خدا این رو خدا خیلی دوست داره چون با عشق داره عبادت میکنه ابلیس از درگاه خدا رانده شد برای چی؟ گفته یکی همین اول همون لشگری طهانی شیطان سه تا چیز داشت سه تا عین سه تا عین داشت یک عین نداشت عابد بود جایی نبود که تو زمین شیطان سجده نکرده باشی عابد بود عالم بود علمای بزرگی مثل بلعم بن را به دست او فریب خوردند از همه چیز خبر داشت عارف بود عارف بود از کجا می‌فهمی شیطان عارف بود تو اوج خشم خداوندی تو اوج خشم گفت رب به انذرنی الی یوم معمولا وقتی خواسته ای یک شخصی از یک حاکم داره موقعی که حاکم میگه برو گم شو بیرون موقعی که پرتش میکنه قلبه خشم تقاضاشو مطرح نمیکنه چون الان دیگه فایده نداره تقاضا مطرح کردن قلبه خشم میره یکم خشم پادشاه که فروکش بکنه بعد میاد میگه حالا اون لحظه ناراحت بودی ببخشید ماف کنید فلان خواسته منم بده او لغزه خاصش رو مطرح نمیکاره اما شیطان تو اوج خشم الهی از خدا خواست رب انذرنی الایوم یوعث چون شیطان میدونه الله هیچ موقع مغلوب خشم خودش نمیشه و تو اوج خشمم خدا فیصله نمیکنه که بعدا خدایی نکرده انیاذ الله ازش پشیمان بشه ناخیر تو اوج خشمم عدل خدا از بین نمی عارف هم بود خدا رو کاملا میشناخ اما یک چیز نداشت چی نداشت؟ عشق نداشت چون عشق نداشت به یک سری عبادت های زاهدانه و خشک راضی شده بود امتیاز رو اینی میدونست که اینقدر سجده کردم اینقدر طاعت کردم اینقدر عبادت کردم اینقدر فلان کردم سیر شده بود گویا و اینها رو خدا میگه چرا سجده نمی کنی؟ برای خدا داره حجت تراشی و برهان تراشی میکنه. خدای من از نار خلق شدم، اون از خاک خلق شده. من چطور در مقابل این سجده بگذاره؟ دولت عشق سرمایه بزرگیه. آیه که خدمت دوستان خواندم یک طرف میگه اهل ارتداد رو خدا بیان میکنه، یک طرف اهل محبت رو. این ما بین این دو گروه رو خدا داره معرفی میکنه. در مقابل مرتدین الله سبحانه و تعالی احل محبت رو بیان میکنه یعنی هیچ موقع اهل محبت اهل ارتداد نمیشن ایمانشون به یقما نمیره ایمانشون قارت نفس و شیطان نمیشه محبت زامن حسن خاتمه است. حالا مولانا دسته اول افراد این جامعه رو به عنوان ماهی معرفی میکنه اینها کاملین، عاشقین. عاشقین پاک باز هستند که همیشه منتظرن درجات قرب خدا رو بیش از پیش تی بکنن در این وصلن به تعبیر سعدی چقدر زیبا میگه دلارام دربر و دلارام جو هم با خدا هستند هم خدا رو میخوان هم طعم قرب چشیدن کنار دریای قرب خدا هستند. اما در این حال آرزوی این رو هم نمیکنن که از این دریا یک روزی برن بیرون چون نگاهشون به اون منتهای دیده درجات قرب خدا لا متناهیه به اون چیزهایی که دارن نگاه نمیکنن، به اون چیزهایی که ندارن از قرب خدا نگاه میکنن اونه هیچی ندارن یک زمان یکی آمد پیش مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله تعالی استاد مولانا الیاس رحمت الله تعالی شیخ اولشون بعدن باز با مولانا خلیل احمد سهارانپوری رحمت الله تعالی, تعالی تعلق اصلاحی برقرار کردن برای تسکیه نفس. مولانا اینقدر عاشق مولانا رشید احمد گنگوی بود که گای اوقات تو زندگی نامشون میاد که شب یکی دو مرتبه بلند میشد چهره منور استاد خودش رو مولانا الیاز زیارت میکرد و میخوابید. اینقدر عاشق مولانا رشید احمد گنگوی بود. مولنا رشید احمد یک زمانی یکی آمد پیشش گفت حضرت من آمدن با شما تعلق اصلاحی برقرار کنم میخوام بالاخره در کنار شما قرب خدا رو به دست بیارم مولنا رشید احمد گنگوی اون لحظه آهی کشید با یک حالتی گفت والله من هیچ چی ندارم این بند خدا داحتی بود دیگه از راه دوری آماده که خودش قسم میخوره که من هیچ چی ندارم من آمدم ازش چی بگیرم رفتم بالک اما یک عده از متعلقین و دوستان میدونستن که آقا این ماهیه که تو دریاست ولی از دریا سیر نیست این جریانش فرق میکنه با اونای دیگه یک آقا سعی میکنه با تصنع شده تکلف شده با یک سری فرصده ها و هاوهو ها و با یک سری استدراج ها و کارهای العاده خودش رو به زور بقبولوله به مردم که من چیم و مردم رو به طرف خودش مایل بکنه و همش ادعاش، صحبتش، کلماتش، جملاتش، رفتارش، گفتارش، نشان دهنده اینه که میخواد بزرگی خودش رو به زور به دیگران تحمیل کنه اما یک ادعه انسان ها هستن که اینها تو بحر محبت خدا هستن اما چی؟ هیچ موقع اون چیزی که دارن هیچ میدونن چون نگاه اونا بر اون چیزی که هست نیست نگاه اونا برای اون چیزیه از قرب خدا که قراره تئی بکنن ذات لا محدود انه وراء ثم وراء ثم وراء ببینید دوستان ما میخوایم از اینجا مثلا میگن برای تفهیم بیشتر خاطر بر فرق من و تمثيل من اما مجبوری گاهی اوقات انسان با کلمات و جملات تفهیم بکنیم مخاطب رو ما شما از اینجا مثلا میخوایم بریم قطب شمال قرار یک سفری داشته باشیم خیلی خارق العاده با این ترتیب مثلا یا قرار بریم کره ما حسن. خب این یک سری تدارکات داره باید بری مشهد از مشهد با پرواز بری تهران از تهران بری کجا از اونجا باز پرواز تازه شروع میشه خب دوستانت خبر دارن تو میخوای بری کره ما شما از اینجا ماشین سوار شدی مثلا رفتی تایباد از تایباد میخوای بری مشهد تایباد رسیدی یک مقدار راه رفتی خب دوستانت سوال میکنن کجایی الان میگه هیچی هنوز که هنوز که را یعنی این فاصله از اینجا تا تایباد رو که 90 کیلومتر کمتر و بیشتره اینو چی میبینی؟ ببین هیچ دروغی هم نگفتی چرا؟ چون نگاه تو به اون فاصله‌ای که قرار ماه بری نگاه تو به این 90 کیلومتر نیست که نگاه تو به اون راهی که قرار بری به نسبت اون راهی که قرار بری اون رو داری میبینی اون اونجوری چشماته به نسبت اون راه این راهی ای که تابحال تی کردی اینا رو میگی چی؟ بگی؟ هیچ. حالا, قص... حالا اگر مولنا راشید احمد گنگوی رحمت الله تلالی مؤکد قسم میخورد والله من هیچی ندارم راست میگف یا نمیگف راست میگف اما خیلی همه هستن که سعی میکنن همون ای که دارن دریا جلبه بدن دو قدمی که رفتن منزل جلبه بدن این نشانه اینه که اینا هیچی از معرفت و محبت خدا ندارن مولانا حکیم علامه تحانوی نقل میکنه که پدر بزرگم حکیم علامه مولانا شفره یه تحانوی اشاره مصنوی کلید مصنوی نقل میکنه که در زمانه ما پدر بزرگم نقل میکنه که یک آبدی بود یک زاهدی بود و بالاخره همینطور داشت عبادت میکرد بدون شیخی بدون مختدای بدون یک آله و ربانی که سایش رو سرش باشه خودش داشت همینطور از سر خود عبادت میکرد. مردم خیلی قبطه عبادت های اینو رو قبطه ریاضت های اینو قبطه زهده اینو میقاردن اما یک آدم شختبی تو همین محله بود این قبولش نداشت اینو یک روز داشتن جلوی جمع تعریف این آقا رو میکردن حکیون رو میگه من از پدر بزرگم اینو نقل میکنه. داشتن تعریف میکردن این چه آودیه این چه زاهدیه این چه عبادت های طولانی داره این چه سجده های طولانی داره هم شوخ که اینو قبول نداشت گفت وله من که برابر یک ارزنم به این اعتقاد ندارم چطور گفتن جاهل چیه که عبادتش باشه نه مقتدایی داره نه راهنمایی داره این مسیر پر سنگلاخ که رحزنهایی مثل نفس اعدا عدو رحزنهایی مثل شیطان سر رایشه این آقا میخواد تکو تنها بره از همینجا میخوای از این استان به استان دیگه بری از این کشور به کشور دیگه بری نیاز به یک خلبانی نیاز به ملبانی داری میراد به یک رانده حاضق داری این آقا انتون از سر خود میخواد بره این مسیر پرسنگلاخی رو که بن با اوراها وسط را مونده، صاحب اسم عظم مستجاب و دعوه ولی دوران تو این مسیر پرسنگلاخی که ازازیل بنده معزز خدا موند وسط به یک صفت زشت باطنی همه ی عبادت های چندی سالش به باد رفت این آقا میخواد از سر خود بره وله من اینو قبول ندارم. نه این علم کافی رو داره و نه این چی داره بگید مردم ما به اینا نگاه نمی‌کنن مردم ما نگاه میکنن خدمت شما فلانی بزرگه خیلی بزرگه چرا 200 300 نفر دورش جمع بوده های وویی داشت فلانی خیلی بزرگه چیکار می‌کرد نمی‌دونم کارهای عجیب غریب خارق اونجا انجام میداد فلانی خیلی بزرگه چرا رفتم تو جلسش کیف کردم این میارهایی که مردم ما برای چی اینا رو گذاشتن برای خوبی طرف مقابل از یک بند خدا میگه سوال کردن از همه نمازها از کدوم نماز بیشتر لذت میبرید کیف میکنی گفت چطور بگم از نماز جنازه حقیقت عجب ما منتظر بودیم تو بگی تهجدی بگی اشتراقی عبادی نی نماز فرضی نماز جنازه را از هم بیشتر دو گواره خیلی نماز خوبی است گفتن چطور گفتن تفاش که مهم نیست هر جا واسطی واسطی خیلی راست هم نبود, نبود. وضوع هم نداشتی دقیقه نود میتونی تهمم بزنی این هم مشکل بر رکوع و سجده که اصلا نداره اگر هم خیلی رود فشار بود هوا سر بود با کفش بخون کفش تمیز باشه اشکال نداره از همه مهمتر آخرم هم میگن آقایون جای نره نهار خانه ما دعوت. این نماز نماز خوبه نمازی روح بخش نمازی با کیف مردم این میاره برای شناخت فلانی خوبه چون بالاخره اونجا به شکما میرسن فلانی خوبه چونجا چون رفتم کیف میکنم فلانی خوبه چون نمیدونم اونجا یک سری کارهای عجیبی انجام میدن اینو معیاره اینو محکه اما این یکم عاقل تر بود در کنار شوخ خودش یکم میگه عاقل بود دو آقا تو این مسیری که این همه سنگلاخ داره این همه گردنه ها و عقبه های سخت داره یک نفر از سر خود میخواد بره دروغ میگه این نمیشه بره آخه برای گمراهی شیطان شیطان دیگه نیامد شیطان رو کی گمراه کرد؟ نفسش نفس از شیطانم بدتره این نفسی که از شیطان بدتره و با, با این شیطان اینا رحزنهای راه تو هست شیطانی که گفتیم آبده همه کور راهی عبادت رو رفته عالم آرفه تو میخوای با او بجنگی با این نفس میخوای بجنگی تک میگوید به همین برای همین نفس کشتن از خودکشی سختره کسی که خودکشی میکنه کار نداری فعل قویه برای رسول پاک برای زجر و توبیخ در نماز جنازه اینطور افراد شرکت تا. و از دعای رحمت و لعالمین اینطور افراد محروم بوده. اما کسی که خودکشی میکنه یک مرتبه عزمش رو جسم میکنه و تنابیده رو گردنش میندازه حلقا بیزش میکنه اما کسی که میخواد خودکشی بکنه هر روز با این دو دشمن دار نفس و شیطان باید بجنگه. رو بلد باشه بتونه اینا رو چطور زمین گیر کنه. بر حال مردم میگفتن سیچی نگویم بزرگ ما دیدیم تهجدش رو ما دیدیم تقواش ما دیدیم فلانش رو امیدوارم من, من قبول ندارم. یک روزی این آقای شوخ طبع میگه بخاطری که به مردم بفهمونه این خیلی بنیادی نداره عبادتش و این جزء غیر غیر این جزء ماهیا نیست شما فکر میکنید ماهیه دریای خداست این غیر ماهیه این زود سیر میشه پیمانش کمه این ظرفیتش کمه این معرفتش از خدا شناختش از خدا تکمیل است به خاطری که به اون بفهموره میگه این آقا داشت عبادت میکرد رفت از اون کلادور یا نورگیر که تو مناطق ما مشهور قدیمی خانه ها داشتن از اون نورگیر رفت بالا گفت ای بنده زاهد من با یک لحجه ای با یک حالتی این بیچاره سر بلند کرد سجده کرده بود از تو کرد بعد دو مرتبه یک خورده بحت زده شد کی این؟ گفت منم برادرت جبریل سبحان الله گفت بله چه بیغامی؟ گفت من از طرف الله آمدم گفت بفرمایید چیه؟ گفت تو حق عبادت و بندگی رو ادا کردی و تو به منزل قرب خدا رسیدی از این به بعد از طرف ما تو عفی. منتظر موت باش تا این که سبحان و تعالی تو با پیک مد تو رو به لقای خودش ببر از این به بد تو مرفوع قلمی عبادت نمیخواد نماز نمیخواد سجادش رو جمع کرد نشت سراجش حالا این آقا میگه چیزی به اهل محله نگفته چه بلای سر این بیشاره در این غیر ماهی چطور کم ظرفیت بوده این رو تکمیل کردم پرش کردم با چهار تا کلمه مردم دیدن آقا نماز رو ظهر شد آقا نیاورد. نماز عصد شد، آقا تشریف نیورد مغرب شد آقا تشریف نیورد گفتن نکنین، خیلی مقید بود اول وقت مسجد نمیآمد و از مابین نماز تا نماز بعدی وامی میشد اهل ذک بود اهل فکر بود اهل فلان و اهل فلان بود چرا نمیاد حتما کاری شده فوت کرده مریض شده رفتن خانش بعدم بله بالا بالا نشسته و با یک حالت خاص مثلا هر روز که بالاخره نشسته باشه نه یک حالت خاص ادای بزرگا رو مثلا در میاره بعد گفتن که چی شد جناب نمازا نمیایید که سالاتی مشکلی پریشانی چیزی بگین از دست ما رفت بشه گفت فرزندانم من تی کردم من گذراندم مراحل را و دیگه جبرئیل آمد سلام علیکی به من کرد و دیگه بقیه رو نمیتونم بگم راز ما بین من و خدایم یک مرتبه همین شوختبی که این بلا رو سرش دار آورده بود تو جمع نشسته بود نتونست خودش رو کنترل کنه زد زیر خنده همه یعنی معلف هم این بلا رو این سرش دار آورده بعد این آقای شوختب همون صدای دیشوی رو در آورد گفت جبریل اینطور حرف نمیزد گفت چرا؟ گفت من بودم جناب جبریل نبود هیچ چند بعد نمازت هم به جا بیار فقط میخواستم به اینا به که تو در دریای محبت خدا نیستی تو آدم کمزرفیتی که چه؟ یک صدا، یک فریاد، یک خوشی، یک لذت، یک وشت، یک طرف تو رو میتونه از مسیر پرت بکنه هیچ اعتباری نداره عبادت هر که جز ماهیز آبش سیر شد هر که بیروزیست روزش دیر شد. این روزش ملالاور شده روزش خ پر از خستگی شده. اهل دنیا رو نگاه کنید دنیاشون رو با میلیاردها ثروت با میلیاردها پول با انواع تخت ها زندگیشون تکراری و ملالاور شده. خودشون از زندگیشون خسته. نمیدونم آخر باید کجا برم؟ نمیدونم این خلق درونی خودشون رو چطور بعد پر بکنه. خب به پول رسیدم حالا حالا با پول میخوام آرامش بخرم سکون بخرم. می‌خوام مثل یک ماهی در دریای محبت خدا با سکون زندگی کنم. از کجا برم بخرم؟ با این پول از کجا بخرم؟ این روز زندگی ملال‌آور و این زندگی خسته کننده چطور بتونم توش تنوع ایجاد کنم؟ نشه میخوام نشه قرب خدا هم نداره مثل ماهی. مثل ماهی در دریای محبت خدا نشه قرب نداره. این ویروزی حالا قراره بره، روزیش از کجا بگیره؟ دیگه از خرده‌فروش سر کوچه یکم به من بده، نشه کریستال کارات رو تجربه کنه. با پولش میتونه نشه کریسال بخره نشه کرک بخره نشه منقل و بافور بخره نشه مشروبات الکلی بخره نشه سی های مبتذل بخره اما با پولش این آقا میتونه به نظر من نشه قرب بخره چقدر باید ازینه کنه تو یک ذره نشه قرب به خدا رو بهش بده چقدر؟ بگید به خدا اگر این نشه رو تجربه کنی همین نشه ها رو ترک میکنی حالا حرف از حرف میاد شما روز اول ما رو آزاد گذاشتین من بهتون گفتم اگر هر بخوام تشریح و توضیح بدم شما حاضرید ظاهرا چند تا پیامک آمد مولانا هم به ما گفت بعدن که آزادی ما هم از همین استفاده میکنیم حضرت مولانا محمد عمر سربازی میفرمود یک زمانی از این نشه قرب خدا و نشه کریستال و کراک میخوام بگم حضرت مولانا یک روزی ازشون سوال کردن حکمت چیه مولانا یک مثال زد حکمت چیه در دین مولانا فرمود ببینید یک شخصی یک زمانی آمد با مولانا رشید احمد گنگویی استاد مولانا الیاس تعلق اسلامی برقرار کرد خودش رو سپرد کرد که منو بالاخره مراحل تسکیه رو بگذرون و منو از این حالت در بیار. دو نفر بودن دو تا دوست اینا که بیعت کردن رفتن بیرون یکی از اینا معتاد بود بعد که اینا رفتن بیرون اون دوست به دوست دیگه گفت خوب با مولانا بیعت کردی دیگه انشالله از این به بعد دیگه تریاک و فلانو میذاری کنار دیگه نه گفت ببین جناب من گوشامو خوب تیز کرده بودن موقعی که با مولانا تعلق برقرار کرده و مسافه کردم مولانا من از خیلی چیزا توبه ولی از تریاک تو توبه نداد این ماده تفصرا رو تو دیگه تو دین اضافه کردی این از کجا آمد؟ کوچ جناب چطور مولانا نگفت گفت من دوشام تیز بود از اول تا آخر که مولانا اگر اینو بگه فوراً به مولانا بگم که این از اون خط قرمزای منه به این نزدیک نشه ولی مولانا خودش خودش بخدا هیچی نگفت چطور گفت چی مولانا گفت از شرک توبه کن گفتم خوبه از کفر توبه کن تو خوبه از بدعت تو کن خوبه از معصیت تو کن اینجا رفیقش گفت همینه هم گفت نه جناب اسم تریاک برده نشه ایا صرف خودت داری ماده تبسر درست میکنی این دوستش دست گیره برد پیشه مولانا رشید احمد گنگویی رحمت الله تعالی گفت مولانا این مرید شما که با شما تعلق اصلاحی هم برقرار کرده این میگه که من حاضر نیستم این مواد مخدر رو ترک بکنم مولانا یک تبسمی کرد گوش شما معتادی گفت ولی مولانا من میگاشم ترکشم نمیکنم شمارم شما رو خیلی دوست دارم با شما ای دارم اما این این این دیگه خواهش میکنم به این دیگه کار نداشته باش. مولانا فرمود ببین روزی چقدر مصرف می‌کنی او اینقدر بود همون دوزه مورد نظر تو جیبش بود گفت اینقدر مولانا گفت ببینمش گفت میدی مولانا عباس؟ گفت بله میده دادم مولانا یکم یک از سرش کم کرد گفت ببین به خاطر من که با من ارادت داری یکم یک که کم می‌کنی گفت بله اینم فدای شما نمی‌کشم اینقدر نمی‌کشم اینو کم کرد و رفت بعد یک مدتی آقا هاشم آورد د در, در زد مولانا فراموش کرده بود اینو تق تق تق بعد مولانا گفت که کانه که می هم مولانا آب کا مورید مولانا من هستم مورید شما همون بنگی حضرت گفت آمد تو گفت, چه خبر گفت حضرت عجیب حالتی شده بلاخره تو این راهکارهای اصلاحی که شما برای من گذاشتید و از کار اورادی که شما به من داده چه لطفیه چه حضیه بعد صحبت ها که شد مولانا یک سری بلاخره راهکارهای جدید بهش نشنداد بعد گفت که از اون چه خبر؟ با همون مقداری که قول دادی می‌کشی گفت بله و ببینمش نشون داد همینه والله یک ذره بیشتر نکردم یک یکم دیگه کم کرد گفت جناب به خاطر من این تکرم کم کن ولی این مراحل اصلاحی خودتم ترک نکن تعلقی که با من داری اینو ترک نکن او خوبه رفت بعد یک مدتی دو مرتبه گذشت یک مدتی دو مرتبه آمد باز دو مرتبه در زد ها کون ہے چی قم میو حضرت اپ کا شما هستم بنگی ادرادو های جی بیای تو عامل گفت چه خبر گفت حضرت عجیب شد الحمدلله ترک معصیت برام آسان شده نه تنها آسان لذت بخش شده عمل بر شریعت برام طبیعت ثانویه شده اجرای حکمای خدا برام پر از و شادابی شده و همین زندگی وقف الهی کلمت الله و احیای دین شده تہجد گزار شدم اشک نیمه شب رو خبردار شدم حالا میدونم خریدار اشک و آه من حالا ساعت ها با خدا حرف میزنم حضرت مولانا فرمود از اون چه خبر؟ گفت که اونم با همون دوزی که شما گفتید مقداری که شما گفتید همونه حضرت سرود بده یک کم دیگه کم کرد بعد این رفت دو مرتبه باز آمد تکرار شد حضرت فرمود چه خبر؟ حالا دید حضرت نور صالحین تو آمده صاحب نسبت شده حالا حس میشه که چه تغییری تو آمده شده مولانا گفت که از اون چه خبر؟ گفت بله حضرت همین قدمی کشم حضرت یک کم دیگه کم کرد دو حضرت چی همش کم می‌کنی از سر این نکن حرامه بعد گفت جناب بله حرامه. و ما اول نگفتی که همون اول که با ما خط نشون کردگی <تصفيق> گفتی اگر به این نزدیک بشی این خط قرمز منه همه رو ول میکردی و می‌رفتی. منم در حین این مسیر داشتم ترکت میدادم خودت متوجه نبودی. نشه قرب خدا رو بهت میدادم تا نشه که کرا که بتونی ترک کنی. حالا برات راحت شد. به هر حال ببینید دوستان خیلیا بودن که این نشه قرب خدا حالتی براشون به وجود آورده که نشه مملکت رو نشه مملکت رو مثل سلطان ابراهیم بن ادهم فدای این کردن این نشه حجیبی غیر قابل وصفه و کسی از سیر نمیشه هر که جز ماهی آبش سیر شد هر که بیروزیست روزش دیر شد زندگی اینا ملالاوره به خدا در اوج ثروت ها اگر باشند، اوج قدرت ها اگر باشند، زندگی افرادی که از محبت خدا بی زندگی ملالاوریه اینا نمیتونن خلع باطنی و درونی خودشون رو پر کنن نمیدونن با چی بد پر کنن اصلا آلم درون من چی میخواد اینا حرفشو نمیفهمن در نیابت حال پخته هیچ خان بلان آخر میگه در گذشته مولانا انسان رو به سه دسته تقسیم کرد برای ما ناقص، کامل، محجوب انسان که بیروزی هستن، محجوبن و نمیتونن طعم محبت خدا رو بچشن همونطور که محجوب نمیتونه حال کامل رو درک بکنه ناقص هم از درک حقیقت حال کامل آجزه ناقص هم نمیتونه حقیقت اون رو درک بکنه چرا که اینا امور ذوقیه هستن اموری هستن شهودی اموری که انسان بعد بچشه تا حقیقتش رو بفهمه در ایهال ولد آمده که ابن غزالی یک شاگردی داشت شاگردش از گفت که طعم قرب خدا رو به من بگید چیه در حین سوالاتی که کرده بود ابن غزالی یک سوالی بهشون جوابی دادن بهشون دوستان ببین این چیزی نیست که کلمات و جملات و ها و مثاله های مختلف بتونه حقیقت این رو برای شما منکشف بکنه لذت این می ندانی به خدا تا نچشی از حلوه حلوه درن شیرین نمیشه اینو باید بچشی انسان تا درک بکنه حقیقت رو بفهمی همیشه شعرها از تنگنای زبان کلمات و جملات و ها شکوه نمی نمی‌دونستان اون چیزی که در درونش هست اون چطور توی ق... لا محدودی که تو سینه هست چطور در قالب کلمات محدود بریزن و به مخاطب تفهیم بکنن همیشه این یک دغدغه فکری برای عرفا و مشایخ بوده چطور اینی که در سینه من هست لا محدود از قرب خدا تو این کلمات محدود من جا بدم نمی‌شه این بعد شاگرد امام غزالی گفت که من میخوام از محبت خدا چیزایی اونایی که تو دریای محبت خدا هستن اون چی می‌فهمن اما غزالی رحمت الله تعالی فرمود ببین یک دوتا رفیق بودن یکی از اینها انین بود یعنی قوه باه نداشت قوه مردانگی نداشت یک زمانی به رفیقش نامه نوشت که ببخشید این ملتی که ازدواج میکنن و حال ماه اصلی دارن و اول زندگی دارن و یک سری لذت ها دارن اینا چیه این لذت ها؟ یکم برای من اینا رو توضیح بده من خودم که از اینا محرومم. خودم که قوه واه و قوه مردانگی ندارم میخوام اینو بفهمم یک کم برای من توضیح بده تو یک مقاله دکلمه یک جوری پانتومیم یک جوری بالاخره به من بفهمون این لذت چیه ربیغش نوش که جناب من تا امروز فکر میکردم تنها تو انینی از, از الان فهمیدم که در کنار انین بودن احمقم هست مگر این چیزیه که بشه انسان با کلمات و جملات با داستان سرایی و با دیکلمه حقیقتی این رو توضیح بده اصلا این چیزی نیست که تو بفهمی با کلمات بعد هم غزلی به شاگردش فهموند که جناب این چیزی نیست که تو اینو بخوای حقیقت حال دوستان خدا رو با کلمات و جملات و عرفان نظری عرفان قیل و قالی اینا رو بفهمی امروز تو جامعه ما خیلی چیزا مرسومه که آقا مولانا پجو آقا مصنوی پجو خب بریم یک سری مراحل رو بگذارون این تا اینا رو بشناسیم از این مراحل گذروندن تو قیل و قال درس نمیتونی به حقیقت این برسی حقیقت حال مولانا رو کسی میتونه درک بکنه که به این حال رسیده باشه نه اینکه با کلمات و جملات بخواد یک چیز رو چی تعریفی پردازی بکنه یک عرفان نظری حقیقت رو نشون بده حالا مولانا میگه ادراک این مشکله من بیشتر از این سمراتش رو و بیشتر از این آثار عشق رو برای شما که در گذشته گوشه ای رو شمه ای رو برای شما گفتم از این بیشتر دیگه نمیگم چرا چون در نیابت حال پخته هیچ خام چون نمیتونه شما درک بکنی وقتی ناقص نمیتونه حال کامل و پخته رو درک بکنه تطویل کلام طولانی کردن کلام چه فایده چه سودیه توش و سلام این،, این کلمه به عنوان ختم مبحث آمد یا اینکه طوری دیگه بگیم یا ختم مبحث بگیم یا تقدیر عبارت این طور میشه که مولانا میگه و السلام و فسکوت حالا که تو نمیدونی حقیقت رو درک بکنی منم بخوام هرچی با این کلمات بیشتر به تو توضیح بدم کار رو چیکار میکنم مشکلتر و دشوارتر میکنم چون گایی اوقات این مزامین انقدر ریزو باریک و دقیقه که هرچی بخوای به مخاطب تفهیم بکنی اونو گیشتر میکنی انحراف عقیدتی میاد میکنی مثال بزنم بند خدایی میگه دم در کوری آمد کور مادرزادی یک ظرف برنج بهش داد گفت ببرده دست بده به این کور اینم کور مادرزاد بعد آورداد به این کور کور گفت که شیر برنج؟ امیشاره نخورده بود اینا رو نشونیده بود تا اولین طور قزائی رو تو منطقه ای اونها اینا مرسوم نبوده نه برنجو میفهمید و نه شیر رو تجربه کرده بود تا بال با بعد گفت که شیر برن چیه گوش شیر سفید کاملا سفیده کور مادرزاد سفید چی می‌فهمه باز یک مصیبت شد سفید چیه این بچه کوچک با زبان چگانهش حالا می‌خواد سفیدو بهش تشریح بکنه گفت سفید مثل قو مثل قو سفیده بعد قوچیه گفت گفتم هم نمیدونید؟ گفت نه گفت قو, قو اینطوریه نگاه کن دست, دست بده من دستو دست ببین گفت اینطوری قو اینطوری این شکلی داره اوه اینو میخوای به گلوی من کور بندازی رحم کن آخر چه کاری هستی میکنی با من حالا ببینید این میخواست یک چیز ذوقی رو یک چیزی که میتونست بچشه و بفهمه اینو میخواست با کلمات و جملات با این ذهن محدودش این بچه به اون تفهیم بکنه آخرش به کجا سر در آورد بلانان میگه و سلامت و فساکوت من از این بیشتر اگر بخوام به تو توضیح بدم از دین ممکنه تو که هیولا برای خودت تصور بکنی برای همین راهش اینه که بچشی راهش اینه که خودت تو این میدان بیای و مجاهده کنی و مشاهده کنی ابراهیم بیرون آتش خدا بهش نشون نداد که آتش میتونه گلستان باشه تو کوره مجاهدت ها خدا بهش نشون داد که تو میتونی از آتش و شعله آتش قنچه توحید بچینی تو, تو اوج ریاضت ها و مجاهدت ها خدا همه چیزو بهت نشون میده این بیرون خدا به کسی چیزی نشون نداده این عقبه رو باید رد بشی با اقتحام هم رد بشی مردانوار خود تو بزنی به این گردنه و رد بشی اون طرف گردنه همه چیزو میبینی اون طرف گردنه میفهمی آقایی چی نبوده چی نبوده هر چه بوده او بوده من گول میخوردم این وسط من فکر میکردم اینا عقل در اسباب میدارد نظر عشق میگوید مسبب را نگرد این بیرون عقل به من میگفت آتش میسوزانه بری چنین میشه چنان میشه عقل آتش شعور نداره اصد جنگل که بسوزه ترخوش پای هم میسوزه اما تو آتش گرفتید رفتید نه آقا چیزایی دیگه از خبرهای دیگه است اینجا خدا نشون میده بهت. این کلمات و جملات جامد کتابها و راکت کتابها اینا فقط یک اطلس یک راهنما یک نقشست دستته اگه 100 سال کتاب نقشه بیای بخونی نقشه گنج بخونی بخونی, بخونی، کلیس و پریگار و همه چیز بگیری دستت فاصله ها را میگه یکی که بسنجی و ایر بدی به ابر کامپیوتر همینجا فقط مطالعهش بکنی به گنج میرسی بگی این یک راه نماست. تو دست توه این حروف جامد و راکت کتاب ها از تو یک فرد جامد و راکت میسازه اگر حرارت عشق رو میخواهی، حقیقت عشق رو میخواهی درک بکنی، باید خودت رو به یک نفوس پاکی که خودشون عشق رو تجربه کردن، مجلس و محفل اینا رو تجربه کنی. دوستی اینا رو تجربه کنی، بعد به اون عشق میرسی وگرنه خدا با این در کنار کتاب الله من قبلا هم گفتم جلسه اول خدا رجال الله فرستاد. تنها کتاب نفرستد این کتاب برید خودتون را رو پیدا کنید. در کنار کتاب رجال، کتاب 4 تا، رجال چند تا تاو شده خدا رجال بفرسته بدون کتاب نشده خدا کتاب بفرسته بدون رجال اما تو اصر و زمانه ما همه کتاب به دست گرفته هر کی برای خودش من من میگه هر کی از روی کتاب ادعا میکنه من الان رسیدم تازه چی بگید ردم شدم مثل جلسه گذشته من گفتم هنوز یک چند منزل رد شدیم ما دیگران نرسیدن اصلا سلام مولانا میگه در نیابت حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام نگران نباشی مولانا فقط میخواد یک تلنگوری برای من تو وسط ایجاد کنه این یک به قول معروف شوکی مولانا به مخاطبش میده تا بیدارش کنه جلب چرت تا کلمه یاد گرفتی فکر نکن رسیدی ای یک شوکه به عبارت میگم تو بفهمی تو میدان عمل بیای اصل عمله به مولانا الیاس گفتن مولانا این کتاب شما رو که ما از اول تا آخر همش خوندیم همه قصهاش و همه حکایت‌هاش و همه حدیث‌هاش و اولش رو میگن تا تبلدیم ولدی ماورو یک کتاب دیگه به ما معرفی کن خسته کننده شده این کتاب بلان الیاس فرمود من این کتاب رو برای اضافه شدن معلومات به شما ندادم من این کتاب رو برای اضافه شدن معمولات دادم هر موقع به کلی این کتاب عمل کردید یک کتاب دیگه به شما معرفی کنم حالا گوی این تلنگوریه شوکی مولانا به مخاطبش ایجاد میکنه خب تا اینجا جلو اومدی با من از این حال چی داری حالا از این کیف درون چی داری حالا؟ <تصفيق> که میگی به من بیشتر بگو، بیشتر بگو، بیشتر بگو. چی میخوای بپرسمی؟ عمو <تصفيق> که معلوماتت اضافه شده؟ معمولاتت هم اضافه شده؟ عملکرد هم تغییر آمده تو؟ با من همدم بودی. اشعار منو تا اینجا خوندی. این اشعار تا به حال به غیر از توری پردازی و به غیر از اصطلاحات عرفانی حفظ شدن. آیا برای تو حالیم به وجود آورده؟ لذت قربی هم ایجاد شده قبلا از خلوت با خدا وحشت داشتی توفیق خلوت ازت گرفته شده بود حالا خلوت با خدا رو فهمیدی یعنی چی؟ اگه فهمیدی بیا قدم بعدی رو بریم باز یک کم بیشتر به توزی میده اگر نه چی؟ فکری با حالت بکن حالا مولانا باز در بیت بعدی در گذشته مولانا یک گوشه ای از اسرار عشق رو گفت یک شور اشتیاقی رو تو مخاطبش ایجاد کرد بعد وسط را به مخاطبش یک مرتبهی در اوج این که مخاطب منتظره که قدمای بعدی رو به مولانا برداره و برسه به اون منزل یک مرتبهی مولانا گفت که بس تا همینجا آمدی چی؟ از این براغ عشق پیاده شو از این بالاتر اگر بری فروق اشق فروق تجلی خدا میکنه بیا میکنه از این به بعد باید از این به بعد با حال جلو برید جبریل هم هستی اما اون چیزی که انسان خاکی رو به افلاک برد عشق بود مولانا جلوتر میگه چون عشق نداری بی‌پویم هر چی زاهدی هر چی هر چی اصطلاحات بلدی هر چی علمت بالاست هر که اطلاعات دینیت بالاست بی‌پویم اما بعد باز مولانا گویا مخاطبش گویا مخاطباش که ما هستیم من و شما هستیم گویا به مولانا گفتیم خیلی خوب ما قبول داریم ما خامیم ما قبول داریم هیچ چیم نداریم حالا چه کار کنیم پخته بشیم چه کار بکنیم مرد میدان بشیم و از این حال و از این وجدان چیزی ما هم بفهمیم از این شعور دینی چه کار باید بکنیم مولانا قر نکنیم بگو قدم اول چیه پا به پاد باد میه همون قدم اولو بگو از کجا باید شروع کنیم. قدم اول دوستان من خیلی سنگینه قبلا هم خدمت شما گفتم اصحاب کف قدم اولی که از مدینه و از اون شهر خودشون برداشتن همون قدم اول سنگین بود بعد خوابیدن کار بزرگی نکردن بعد شق القمر نکردن همون قدم های اولشون خیلی مهم بود حالا این قدم اول چیه که شیطان انقدر سنگینش میکنه نمیگذاره تو پا بذاری تو این میدان اون قدم اول چیه؟ بلانه میگه بند بکسل. باش آزاده ای پسر قدم اول اینه که حریت داشته باشی خود به بهای اندکی نفروشی بنده سیم و زر نشی بنده آنی که در بند آنی توی که در بند یک سیدی مبتزلی همه دنیات شده همون خب تو تو تو از بحر محبت خدا چی میخوایی؟ توی که همه زندگیت شده تعلق ما سوالله تعلقات کوچک و پوچک دنیا تعلق خداوندی رو از تو داره میگیره تو چی میخوای اونایی تو این مقام به مقام خلط رسیدن که این بندها رو چطور گسستن طوری که حاضر شدن چاقوب و حلقوم عزیزترین بچهشون بکشن تکفرزندشون بکشن این طور این،, این, این بندها رو گسستن اونایی که این بندها رو گسستن جان خودشون رو به آتش نمرودی سپردن گر بو کوشی تو گر نکشی تو دل شده مبتلای تو هر کنی کنی تو به جرم عشق تو هم میکشند خوش قوغایی است به جرم عشق تو هم میکشند خوش قوغایی است تو هم بر لب بام آ که خوش تماشایی است فقط ببین خدایا الله خو... الله به نبی اش میگه و صبر فئنک بیعیننا ای نبی من تو مد نظر من هستی صبر کن سبر کن این مجاهده ها این تلخی ها رو به خاطر من صبر کن من میبینم تو داری این بند تمام تاکوت ها رو داری زنجیر های تاکوت ها رو داری میزنی شاهرک های کفر و شرک رو داری میزنی خب چیز مسلمی ابو جهله ها و ابو لحبه ها به میدان میان قطعا میان آتش معاشره قلط جلوت میاد همونطور که برای ابراهیم آمد این توفانها و تندبادها تو مسیر تو هم میاد و زلزل و زلزال شدیدا برای تو هم هست و بلقت قلوب الحناجر برای تو هم هست تگردی جنت برای همین مفتیه و اون مسیری که این صحابه کرام رفتن تو نباید بری خدا غفور رحیمه این طور که ملا سخت گرفتن این هم نیست عجیبه خب حسین میش از خانه هش. میگو خدا غفور رحیمه کنار قبر نبی و پیامبر. خدایا غفور و من همینجا بس کنار این قبر رسول باقر علیه السلام هستم چرا کرب چرا بلا چرا کرب و بلا چرا این همه سر دادن به خاطر خدا چرا این همه جانبازی برای خدا این درس برای منه تو این پیام برای منه تو ماه محرم اولین ماه اسلامی ماست فروردین اولین ماه اسلامی ما نیست 13 بدر مال ما نیست 1 محرم خون عمر مال ماست آشورا مال ماست، خون حسین مال ماست اگر دشت نوروز با گلهای دنیا سرخه دشت محرم با خون حسین و عمر سرخه پس جشن ما روزیه که الله سر ما رو و خون ما رو تو محراب محمد برا ما قبول کنه لایق بدون این سر رو خدا سر خود نهاده بر کف بدین دین آرزو برقصم، که تو خنجرت کشیده زنیام خواهی آمد اولین چیست تو این را اینه که خود تو به پول ابو و ابو جالا نفروشی اگر ابو جلال و ابو لحب ها آمدن گفتن تو اگر, اگر بلفرز بگن ما رو تو یک دست خورشید رو تو یک دست میگذاریم قدمات نلرزه بگیم من اینا رو نمیخواهم مسلمانی نباشی که تو من پول دنیا چکار بکنه؟ تمام ایمان تو رو مزبزب بکنه من در یک جای خواندم مطلبی رو یک معلمی که در یکی از کشورهای اروپایی سالها سال برای نشر و پخش اسلام تلاش کرده بود یک روز میگه من سوار تاکسی شدم تو آلمان. مسیر رو داشتم میرفتم رسیدم به مقصد آقا به من پول داد. نه تنها رو کسر نکرده بود ظاهران اشتباه کرده بود و مبلغی خیلی اضافه تر به من داده بود. اگر من پولو که گرفتم دیدم چطور شد؟ چیز اضافه به من داد هم کس نکرده ظاهرا اشتباه کرده برای چند لحظه یک ریوی و یک چکی تو وجودم موجزت بدم ندم بدم ندم برای چند دقیقه پول اضافه داده یک مرتبه گفتن نمیدم پول بهش دادم گفتم ببخشید آقا این پول رو من ظاهرا شما اشتباهی به من دادید نه تنها کس نکردید یک مبلغ زیادی هم به من اضافه دادی آقا گرفت اینا رو گذاشت جلوی داشبوردش هیچچی هم نگفت نه تشکری نه و تعییدی نتشفیقی چی نگفت ظاهره تا رسیدیم به مقصد مقصد که رسیدم بعد به من گفت که شما مسلمانی؟ گفتم بله باید ظاهرت فهمیدم مسلمانی این پولو قصدم دددد بخواستم ببینم توی مسلمان از اسلام چی داری من چند ماه تو ادیان مختلف دارم تحقیق میکنم الان رسیدم به اون لویه که میخوام مسلمان بشم اسلامو تو کتابو دیده بودم برای اولین دفعه بود که مسلمانو میدیدم میخواستم ببینم مسلمان از اسلام چیزی داره یا نداره وقتی که دیدم الحمدلله نه مسلمان داره مثل دینهای دیگه نیست که فقط قانون پردازی قانون گذاری هست اما عمل توش نیست دین شما همه چیز داره کجای شما مرکز شما کجاست من فردا صبح میخوام مشرف به ایمان بشم این مرد میگه گویا منو یک برغ سفاس گرفت یک حالتی به من دست داد. یا الله به خاطر یک مبلغ میخواستم یک بنده تو رو برای همیشه از ایمان محروم کنم از این که اون امتی نبی باشه برای همیشه میخواستم اون رو محروم بکنم میخواستم یکی رو بفروشم به خاطر چند درهم و دینار به جهنمت خدایا شکرت که من از این امتحان سربلند در دوستانه من اولین شرط تو این میدان اینه که بندهای تعلقات ماسولا رو بکسلی و حاضر باشی که هر هرچی چی تو این میدان خدا ازت میخواد به خدا بدی دوستان من خدا قربانی میخواد قربان نمیکنه. کنه چاقو رو به حلقوم شاهره تمام تعلقاتت خدا میکشه اما به چاقو میگه لا تذبح لا تذبح قرار میست چاقو ببره اگر تو بگی اذبح و میگه لا تذبح چون بکش چاغو رو بکش به همه تعلقات دنیا از اون طرف الله میگه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا اتخذ الله ابراهیم خلیلا از اون طرف خدا میگه و ایده بتلا ابراهیم به کلمات اما مرد این میدان باشید تنها از این شیرخوندن و تنها از این بلاخره کلاس مصنوی آمدن و تنها از این که من چند ترم مصنوی رو پاس کردم به جایی نمیرسید این درس رو گوش کن این تعلقات اولین چیز حاضر باش تو این دنیا همه بند تعلقات دنیا رو پاره پاره کنید این لحظه رو فراموش نکن که عزیزت رفیق دوستت بهترین فردت تو زندگی بیل دست میگیره و آخرین لحظه بهت خاک میپاشه یک بیل خاک نسارت میکنه نیم ساعت بعد از دفنت یکی کنار قبرت نیست این پایان تعلقات دنیاست مرده شد لیلا و هم مجنون او خاک شد خاکی به خاکی وای او اگر میخوای با دیگران تعلق برقرار کنی؟ توش للالهیت باشه توش سبغه الهی باشه توش رنگ خدایی باشه بله همسر تو دوست داشته باش چون ام چون ام المؤمنین سیدتنا عایشه صدیقه رو رحمت اللعالمین دوست داشت حمیره خطابش میکرد گل سرخ رحمت اللعالمین به خاطر دلجوییش که یقت باشه مسابقه دو میداد دور از انظار عمومی دویغان رحمت و لیلالمین با حبیبه خودش آیشه محبت داشت که آخرین جایی که رحمت و وفات کرد خانه آیشه بود آخرین جایی که رحمت و دنیا رو ترک کرد در حالی بود که سر مبارک رحمت و بر قلب آیشه صدیقه چسبیده بود آخرین چیزی که رحمت اللعالمین در دهن خودشون کردن مسواکی بود که با آب دهن ام المؤمنین سیدتنا عایشه صدیقه قیس شده بود برزخ و تقبری که روزه روزه‌ای از روزهای جنته تو خانه عایشه ای است اینقدر با عایشه محبت داشت اما وقتی از عایشه سوال می‌کردند چیز عجیب تو زندگی رسول الله اگر دیدی برای ما بگو گفت رسول پاک به منزلی که صدای اذان رو میشنید گوی هیچ تعلقی با هیچکی نداره از همه بیگانه میشد نه اون لحظه فاطمه پاره تنشو میشناخت نه اون زمان عایشه خمیرای خودشو میشناخت نه اون زمان حسن و حسینی که بر کتف و سر و بازوی او سوار می شدن و بر گونه و رخسار اونها بوسه میزد میشناخت اون لحظه ای که الله اکبر میآمد گویا هیچ تعلقی با هیچکی نداره و محمد فقط بنده خداست این درس برای ما ببینید تو معاشره خودت تو باید هم حاکم باشی هم عاشق رحمت و تو خانش هم حاکم بود هم عاشق و عاشروهن بالمعروف یک تعلق خیلی زیبایی رو قشنگی رو به احساسات عواطف خانمش احترام میگذاره باش هم کلام میشه باش دوستی میکنه از این طرف و عاشروهن بالمعروف چه معاشره زیبایی رو رحمت و برای همه دنیا نشون میده از این طرف الرجال على از این طرف این حاکم بودن خودش رو داره میکنه ما برعکسیم جایی که باید حاکم باشیم عاشقیم، جایی که باید عاشق باشیم چی؟ حاکم تو بحث دین تو بحث تعلق با خدا باید حاکم باشی تو دین اجرا کنی خدا تو رو فرستاده تا تو دین رو تو خونه زنده بکنی تو امیر اون خونه ای اما تو بحث معاشرات اینجا باید تطیب قلب خانمتو بکنی حالش حالشو بکنی به احساسات و عواطفش احترام بگذاری البته تو این بخش بگید اینجا چی اینجا حاکمین موقعی که آقا خانه تشریف میاره گوی هیتلر تشریف آورده حکومت نظامی هر کس سر خودش بشینه آقا داره ذکر میگه و تسبیح میگه و تلاوت میگه همین تعلق بازان عبادت حکیم الامه مولانا اشرف علی تهانوی نماز نفل خوندن. در حین نماز نفل یک مرتبه گفتن که خانم شما از پله افتاد افتاد فوري نماز رو ترک کرد نماز نفل رو رفت ببینه خانمش چطور شد میگه او حضرت شما خانومتون افتاده نماز نفل رو ول گردی رفتید حکیم العلماء تانوی فرود من این تعلق رو غیر دین نمیدونم اما یک زمانی هم بود به حکیم العلماء تانوی گفتن با این رویی که شما دارید زندگی میکنید میگه حکم خدا زنده بشه سنت نبی زنده بشه ممکنه همه اهل زمان شما رو ول کنن همه دروارتون حکمان من فرمود کاش همه منو ول کنن و یک خدا مال من باش بله گاهی لازم باشه تمام این تعلقات دنیاوی رو هزینه کنیم ببینید دوستان من تعلق چند نوعه تعلق محمود تعلق مزموم بشناسیم تعلقات رو تعلقات مزموم رو بشکنیم و پاره کنیم تعلقات محمود، محمودی که دین گفته در اون حدی که دین گفته اجرا کن با بچهت محبت کن با همسرت محبت کن، با دوست رفیقت محبت کن، اما توش للاهیت موج بزنه. به خاطر خدا، بند بکسل، اولین چیز، باش آزادی پسر، پسر. ملنا اینجا میگه بعضی از شر گفتن ای پسر که گفته یعنی گفته تو هنوز خامی، هنوز بچه ای تو این میداد. خلق اتفالن، جز مست خدا نیست بالغ، جز رهیده از هوا. هنوز تو از بند هوا خلاص نشدی برای همین بچه، هنوز به بلوق ایمانی نرسیدی، هنوز بچه، خود گوش کن. به من داره میگه به شما داره میگه بچه این هندوست شما تو این میدان قدر سیما زر رو فهمید قدر خدا رو نفهمید قارونم قدر پول فهمید ابو بک بود قدر خدا و رسول رو فهمید ابو جر هم قدر پست و مقام رو فهمید اما قدر چی رو نفهمید قدر محبت خدا و رسول رو نفهمید این یک نکته مولانا با این میخواد یک تلنگگوری برای ما بزنه که جناب بچه‌ای آن رستیم میدان خیلی خامی آن رستیم اگر خود تو به ثروت قارون بفروشی بچه‌ی به باهای بزرگی نفروختی آخرش خسرانه و باله اگر خود تو به یک حکومت مثل حکومت نمرود بفروشی مفروختی باعی تو اینو نیست تو آمدی با خدا معامله کنی خود تو به کی در می‌فروشی؟ اِنَاللَهِ المؤمنین انفسهم و انوالهم بأن لهم الجنة بعد بکسل باش آزادی ای پسر این یک نکته یک نکته دیگه ملارا می‌خواد بگه هم اینکه ای پسر یک نکته توشه ببینید ابراهیم میخواست بند تعلقات دنیا رو بکسل پاره کنه خدا در قالب خواب که به منزله وحیه برای انبیابش گفته بچه تو میخواب سر بچه تو میخواب سر بچه تو میخواب حضرت عمر موقعی که داشت بچه حد میزد تعذیرش میکرد گریه میکرد هم گریه هم میزد گفتن چرا هم میزنی هم گریه میکنی گفت عمر اونار قاضی میزنه و عمر پدر گریه میکنه دردم میاد بچم لخت جگر منه پاره تن منه اما خدا رو از این بیشتر دوست دارد ای پسر این به این معنا نیست که تو پسر تو دوست نداشته باش عمر پسرش رو دوست داشت ابراهیم بچش رو دوست داشت دین است تو نمیخواد تو بچه تو دوست نداشته باشی بعد اسمت باشه دیندار نخیر دین این رو ازت میخواد که اگر یک روز لازم شد به خاطر خدا شلاغ به بچه تم بزن اگر لازم شد به خاطر حکم خدا چاقوب به حلقوم بچه تم دیگه؟ بکش و هر حزینه برای محبت خدا خاصی بکن دیدید بچه ها رو تجربه کردید من یک یک درس بزرگی بچه به من داد رفتم موازه چیزی براش قریدم چند تا چیز دادم بهش کفتم این مال تو تو مسیر داشتم میام آدم یکی از اینا بده فلانی بده به من یه چیزی بده به من گفتم نمیدم مال خودمه گفتم باشه من همین الان براش خریدم تو دل خودم گفتم من همین الان براش خریدم بهش دادم فراموش کرد من بهش دادم فراموش کرد من احسان کردم فراموش کرد اینا عطای من بوده مال خودش نبوده خدا همه چیز بهش داده پول داده ثروت داده دارایی داده خدا میگه یک چهلم مال تو چرا مال تو بده میگه نمیدونم چرا بده ما بچه تو این میدهان چیزی که خدا به داده، خدا میگه یک چهلومش رو بده، چرک مال تو بده. دست به کمر زده آقا میگه نمیده مال خدا خودم خدا به دست آورده. بچه‌ای، ابراهیم فهمید مالش کجا هزینه کنه؟ ابراهیم فهمید کجا؟ روزی که الله سبحانه و تعالی ابراهیم رو خلیل کرد و اتخذ الله ابراهیم خلیلا میگه تو آسمان ولوله‌ای به پا شد. ملائکه گفتن امام فخر رازی در تفسیر کبیری اینو آورده. علامه آلوسی هم این را آورده در تحت این آیه و اتخذ الله ابراهیم خلیلا ملائکه گفتن یا الله ما حکمت رو میخوایم بفهمیم اعتراض نمیکنیم چطور شد ابراهیم رو فقط خلیل کردی از ما این همه بنده اینو انتخاب کردی گفتیم محبت دو طرفه است میم میم اولین حرف محبت تقاضای وصل میکنه میم این لب این لبو بخواد وصلی باد صورت بگیره تا محبت ادا بشه آلوسی اینا رو میگه صائب تفسیر روح خیلی اصلا فکر میکنن مله ها و این اهل مسجد اینا که از محبت بگید اینا چیز سرشون نمیشه بیچاره اسم فسق گوشه و کوچه و وادار رو گذاشتن اش، بعد این اهل دین رو علما رو اهل تبلیغ رو بقیه رو میگن چی بگید اینا که نمیفهمن بیچاره اینا که پیش اینا از این مباحث چیزی نگین اما حقیقت عشق پیش ایناست حقیقت اینا میتونن درک بکنن وقتی این آیه شد میگه ملائکه آسمان گفتن خدا چطور شد اینو خلیل کردی؟ الله سبحانه و یک ملائکه رو با هیئت یک انسان پیش ابراهیم فرستاد گفت رو پیش ابراهیم فقط بگو الله ببین ابراهیم چه میکنه ابراهیم جایی نشسته بود این ملائکه به هیئت یک انسان ابراهیم نمی‌دونید ملائکه است نمی‌دونید برای امتحان اومده. ما من و تو هم الان برای امتحان تو خواف اومدی. هیچی خوف مال ما نیست میگی نه قبرستان خواف اونایی که میگفتن خانه من ملک من، املاک من، دنیای من، پست من، مغازه کنار بلوار من فلان من، سند ششتونگ من، ماشین آخرین سیستم من اون معنا ها الان اونجا چی دارن از خواف؟ بگید برای شهست سال، هفتات سال آینده من و شما اون گوشه قبرستان ها یک گروه دیگه با تو خواف میگن ملک من، املاک من، خانه من، پست من، مقام من. این همینه نه ما ما تو امتحانیم ما فکر میکنیم نه ما تو امتحان نیستیم ما تو امتحانیم این ملائکه آمد به هیئت یک انسان گفت الله ابراهیم حالتی بهش دست داد این کی بود نام الله منو گرفت بعد گفت که یک مرتبه دیگه بگو یک مرتبه دیگه بگو الله او گفت که اگر این کار رو بکنم چی به من میدیم من جانی او گفت تمام گسفندای خودم رو به تو میدم. یک مرتبه دیگه بگو الله تمام گسفندا رو گرفت این شخص به ظاهر گفت الله ابراهیم گفت یک دفعه دیگه بگو گفت چی میدی به من؟ من میگم گفت تمام اولاد من قلام تو همه مالش رو داده چیز دیگه از مال ثروت دنیا نداره همه رو حزینه کرده برای محبت خدا تمام بندهای تعلقات دنیا رو به خاطر خدا گسته پولی دیگه نداره گفت تمام اولاد من همه قلامتو یک مرتبه دیگه بگو الله بعد اون گفت الله ابراهیم گفت که یک مرتبه دیگه بگو بعد اون که گفت مبارکت باشه گفت مال خودت اولادت مال خودت من برای گرفتن اینا نیامده بودم تو آسمونو ولبره ای به پاشت که چرا ابراهیم خلیل شده حالا فهمیدیم حقت بوده همه مال همه اولاد همه رو هزینه کردی تو خلیل نباشی کی میخواد خلیل باشه؟ حال امروز ما و شما میخوایم بریم عروسی. خب عروس و داماد این جلسه همه ی تعلقات دنیا برایشون مهمه. امروز راضی برگرده، خاله راضی برگرده، دوست، همسایه راضی برگرده، همه ی اولاد راضی برگرده. اگر عروس یا داماد بفهمن امشب یک آمد تو جلسه من ناراحت تا صبح عروس و داماد خواب نداره. اما اگر به این عروس و داماد بگی امشب تو این جلساتون الله ناراضیه، چون فرمان مسئله تو فرمان نار... معصیت بود خم به ابروشون میاد بگید اینو میگن تعلق با خدا اینو میگن دوستی با الله یک زمانی مسلمان میفهمید الله از من ناراض شده خودش رو به ستون مسجد النبی میبست میگفت تا الله منو عفو نکنه از مسجد النبی بیرون نمیره یک زمانی مسلمان تا گناهی میکرد خودش میاد پیش رسول پاک کتبسته یا رسول الله تحرنی یا رسول الله یا رسول منو پاک کن الله از من نار از دریای محبت خدا فاصله گرفت یک زمان مسلمان گناه میکرد ویلولی در دنیا به پا میشد داقت علیهم الارض به ما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم. امروز خیلی چراق قرمزهای دین رو داریم رت میکنیم حکمای خدا رو داریم میشکنیم خم به عبرومون میاد که کیو ناراست کردیم و چیو از دست دادیم بگید کدوم تعلق قالبه بند بکسل باش آزاد پسر قیمت تو اینا نیست پسر گفت اینجا این نکته رو میخواستیم بگیم ابراهیم بچهش رو دوست داشت اما خدا رو بیشتر دوست داشت همین به بچهش گفت انی پسرم تو خواب دیدم من تو رو دارم زب میکنم و خواب انبیا به منزله وحی مشوره تو چیه؟ ابراهیم بچهش نشون با الفاظ خیلی محبت آمیز و رقتبار به بچهش گفت چی؟ من تو خواب دیدم بعد ذهنیت بکنم خیلی با بچه‌ش یک مکالمه زیبا و قشنگی رو کرد قرآن این مکالمه رو برای ما در ذکر میکنه مکالمه این پدر و پسر قبل از این امتحان بزرگ بچه‌ش رو نشون بده با بچه‌ش بگه بچه ببین تو از من سیدی مبتزل خاصی الله ناراض میشه تو دوست داری الله رو ناراض کنی اینقدر نه اینقدر نه این نه چی به بچه‌ش داره میگه بگه الا ای اسماعیل ای جگر گوشه ای جگر من الا سار تو رو از من میخواد. من میتونم سر تو رو به خاطر خدا ببرم ایه چقدر زیبا این لحظه پدر و پسر نشستن با همدیگر ابراهیم داره به احساسات و عواطف بچه‌ش بها میده از طرفی داره با لفظ فرزند او رو خطاب میکنه اینجا این درس رو به همه پدر و مادرها داره میده که ر... یک رابطه حاکمانه با بچت برقرار نکن رابطه عاطفی برقرار کن بچه تو, بچه تو دوست داشته باش بچه تو, بچه تو با لفظ پسرم عزیزم لخت جگرم خطاب کن بعد برای اجرای امر خدا اونو آماده کن تحکم بیشتر نکن روش بند بکسل باش آزادی ای پسر چند باشی بند سیم و بند زر تا کی میخوای بند سیم و زر باشی تا کی میخوای با جذبه های زندگی کنی تا کی میخوای با جذبه های فرعونی زندگی کنی بگی انا انا, انا. مجلس من. لباس من. ماشین من. دنیای من محفل من من من با کادوت با هدیت میگی من با رسم و رواجت میگی من با محفل و مجلس شادیت میگی من با مجلس تعذیه فخرانت فاخرانت میگی من با مردت داری فخ فروشی میکنی با زندت داری فخ میکنی با لباس داری فخ میکنی با, با همه هدیه دادنت کادو دادنت این محبت رو میکنی اما از روی تفاخر و نامو نمود که نام خود تو بلند کنی با همه اینا میگی من من من این من زندگی فرعون بود فرعون میگف انا ابلیس میگف انا با این انا, انا ها با این تعلقاتی که تو با خودت برقرار کردی نمیتونی خدا رو به دست با مدعی میگویید اصرار عشق و مستی بگذار تا بمیرد در درد خود پرستی این خود پرستی این, خود پرستی این خدا خواهی میه باید از اینا بگذاری این بند تعلقات رو باید به خاطر خدا پاره کنی اما خدا همه چیز بهت میده همه چیز نصیبت میکنه گر بریزی را در کوزه ای چند گنجت قسمت یک روزه ای گیرم تو تمام این دنیا خواهشات نفسانی ما حد و نهایت نداره نا. گیرم که تو خواسته باشی همه خواهشات نفسانی تو تو دنیا تکمیل بکنی قسمت دنیای تو چقدر مگه آخر سر خودت با یک تپانچه مسییتر یک گلوله سر این مغزت بکنید. هیتلر آخرین لحظه ای که به بمبست ها رسیده بهخر رسیده بود بعد از همه چپاول هایی که دنیا رو میخواست ف بکنه از روس اینقدر می‌ترسید. جنازه منو دست روسا نیفته. مرده من زنده من دست روزان نیفته. اونا با من منو تکه تکه میکنن اونا وحشیان بعد دوتا زنی که باش همرا بودن همیشه به اون دوتا زن گفت. اگر شما دست روس‌ها بیافتید شما رو تکه تکه می‌کنم اون‌ها بی‌رحمن این جام زهر رو بخورید بعد از اینم نوبت منه اونا که خوردن خودش رفت تو اتاق تپانچه رو گرفت یک گلوله هم نثار خودش کرد ایتلری که سیر نمی‌شد سیر نمی‌شد ببینید دوستان من یک مثال یکی از علما کار کارویش نداریم اما برای پند گرفتن خوبه دو نوع حشره هست یک حشره از خیلی قانه خیلی قانه که از خانهش نمیاد بیرون یک حشره دیگه هم هست که همیشه بیرون خانه و جن میده اما همین حشره حریس قضای همین حشره قانعیه که تو خانه از خانه نمیاد بیرون این حشره حریس که و خانه ای نداره و همیشه خانه به دوشه و همه دنبال خوردن و شکمشم کوچک عمرشم دو هفته بیشتر نیست جناب مگسته زباب میگم بهش بزنی میاد بزنی میاد از اینجا از این کاسه به اون کاسه از این کاسه به اون کاسه آخر مینی تو یک جایی چی شده؟ مرده یا نثار یک مگسکش شده تمام رفت اما یک حشره که خیلی قانه و از جاش جمع نمیخوره باز اون چیه؟ بود تو خانش نشسته خدایت دادی همینجا میخورم ندادی من پای بیرون رفتن از اینجا رو چیه؟ ن همونه. حالا مولانا میگه جناب تا کی هرس تا کی تمع تا کی این بلع اختلاس های گاهی وقتا میشه عدد نجومی یک کلومت صفت بذاری جناش این آقا مگه چند تا شکم داشته این چقدر میخواسته بخوره مگه تا آخر عمر اگه این می میخورد به جای نون به جای لواش بازم سیر میشه تو باید چی میگشته این مگه کده ماه رو میخواسته این بخره زحال رو میخواسته بخره اتاروت رو میخواسته بخره کجا میخواسته بره؟ برای همین مولانا میگه گناه حقیقی دنای چشم نیست کناه دله, دله چشمت سیر نمیشه کوضه چشم حریسان پر نشد این کوضه چشم هیچ پر نمیشه اگه دنبال یعنی که این پر کنیم این پر نمیشه این پر میشه و اگه این پر شد واقعا همه چیز بد میرسه شیخ عبدالقادر جیلانی رو گفتن که میخوای مملکت نمرود رو به تو بدیم از وقتی از مملکت نمرود خبردار شدم از شب خبردار شدم مملکت نمرود تو رو به یک جو هم نمیخاره سیر شد سلطان ابراهیم بن ادهم سیر شد این نه دل سیر شد از همه مستقنی شد یکی پیش یک بزرگ یک مبلغی را آورد گفت اینا هدیه شما اینا هدیه شما بزرگم نمیخوام گفت نمیخوا. اصرار کرد خواش میگارم اینا رو بگیرید گفت نمیخوام من احتیاج به اینا ندارم. و میشه اتیاج نداشته باشی گفت حالا که شده من الهمدلال احتیاج بینا ندارم بعد اصرار اصرار اون بزرگ گفت که اگر همین مبلغ رو یکی دیگه به تو بده تو قبول میکنی میخوای گفت برای که میخوام گفت تو از من معتاشتری برو سرف خرج خودت بکن من که میگم احتیاج ندارم که اروین دو سان حقیقی قنای دله مولانا میگه اگر میخوای بند تعلقات دنیا رو پاره کنی اولین کاری که میکنی جلو حرص و طمع تو بگیر به خودت بگو دنیا مگه چند روزه من تا کی میخوام بخورم اگر بریزی بحر را در کوزه ای اگر دریا رو توی کوزه بلفرض تو بریزی مثل هیتلر آخر ظرفیت تو عمر تو چقدر چقدر توش جا میگیره چند گنجت قسمت یک روزه ای کوزه چشم حریسان پر نشد، تا صدف قانع نشود پردور نشد مشهور در نزد عوام که صدف دهن باز میکنه به یک قطر قانع میشه میره تهیه دریا دهنشو میبنده و به همین یکی چی شده قانع شده بعد پردور میشه بنا همین تصور عامیانه ای که هست شو و اوقات به خاطر تفهیم عوام این رو میفهمونن ببینید گرچه که خب شاید این خلاف واقع هم باشه اما چون یک چیز مشهور ما بین عوام هست این رو مولانا اینجا میاره ببینید صدف به یک دانه قانع شد دهنشو بست شکمش بستش و بسته منه چقدر میخوایم بخورم رفع اون پایی بعد چی ازش در آمد بگید دور دو در آمد. اگر این میگو یه قطره حال دو تا سه تا بشه حال ده تا بشه هم تو تو خالی دهن باز میرم قرد میشون ایچه گیرش رو میگه برای همین تو خالی نباشیم دهنمون همیشه باز نباشه دنیا رو برای دنیا نخوایم. بلکه دنیا رو برای مولا بخوایم و تلاش بکنیم تا این قناعت ها رو کم کنیم تو بیت بعدی مولانا درس عشق رو میده راهکار اصلی خودش رو راهکار اینا تا اینجا مولانا سلوک رو گفت از این به بعد مولانا میخواد جذب رو بگه یعنی طریق عشق رو برای ما بیان کنه یک راهکار اصلاحی برای اینکه ما از خامی در میایم و پختگی برسیم عشق ان این جلسه آینده درود بی